خانم افلاطونی سلام امروز که این وایس رو شما گوش می‌دین درگیر یک مسئله هستین که از صمیم قلب آرزو می‌کنم که زودتر این مسئله حل بشه برات و دوباره ما همون خانم افلاتونی شاد و قوی و سرزنده رو ببینیم لذت ببریم از کار کردن باهاش همه این اتفاقات ناوباری ها قطعاً گذرا خواهند بود و این موتور آدمیزاده که باید همیشه روشن باشه و برای رسیدن به اهدافش تلاش بکنه اینو بدونین که حضرت تو مالی شرکت نووین الماس یه وزنه است و بسیار کمک کننده به واحد مالی ما امیدوارم که دفعه دوم سوم اگر یه روز این بویس رو گوش دادی مشکلات امروزت حل شده باشه و خیلی با فراغ بال اول به زندگیت برسی و بعد هم به کارت بردارزوی سلامتی می کنم شاد و سرحال و قبلاغ